دوستان عزیز در بحث گذشتمون درباره دیو صحبت کردیم و رسیدیم به داستان جمشید و پرواز جمشید به آسمان و روز نوروز که چگونه این, این روز که در واقع باید یک جشن بزرگی باشه و میراجه انسان به آسمان هست چون جمشید نمونه همه انسان هاست در واقع در این باره صحبت کردیم بعد و همچنین در این باره صحبت کردیم که دیو چقدر منای خوبی داشته که بعدها زشت سازی شده این معنا ولی یه نمجز... دیو کسی بوده نیروی بله. بوده که انسان رو به معراج میبرده آفرین بعد جناب جمالی یک قسمت از داستان جمشید هست که اه، اه، که این دیوها اه، اه، کارهای مهندسی میکنند دیوار میسازند در این بار صحبتی نش... نکردیم دفعه پیش میخواستم اگر میشه یک مقدار این مسئله رو برای ما گسترده کنید و بش کافی برای شناخت مسئله دیو درست همین نکته و بررسی نکته ما را درباره فرهنگ پرهنگ کوهن ایران خیلی پیش میبره من برای خاطر که این نقطه را باز کنم اول این شعر شاهنامه را میخونم بعدش با درباره باره او صحبت میکنیم خواهش میکنم بفهمید از جمله کارهایی رو که می شماره که جمشید 50 سال این کار رو کرد 50 سال اون کار رو کرد و فران وقتی به این میرسه که بفرمود دیوان ناپاک را دیوان ناپاک را به آب اندر آمیختن خاک را. آب و خاک رو با هم بیام. هر هرانچه زگل آمد چون بشناختند سبوک خشت را کالبود ساختن قالب خشت را ساختن برای ساختم به سنگ و به گچ دیوار کرد نخست از برش هندسی کار کرد چو گرمابه و کاخای بلند چو ایوان که باشد پناه از گزن. درست همین مسئله اساسی اینه که جمشید در اینجا دیوان ناپاک را به اینها امر میده که خانه و کاخ و گرماوه و اینجور چیزا بسازن خب اینا احتیاج به سنگ و گچ و ساختن دیوار و سقف و اینها داره این مسئله یکی از مهمترین م... مسائل مدنیت در ایرانه ش... شهرسازی دیگه در باقید با... با دیگه. اصاسا خش در مفهوم ایران بنمایه و اساس خانه و مدنیتی نه تنها خانه سازی، خانه سازی مفهوم مدنیت دارد. اصلا خانهسازی سازی معنای خیلی کلیتر پیدا میکنه مثلا در داستان کابوس می که بعد از اون کارهای بی اندازه خواهیش که کرد می در آخر عمرش که در آراستان جهان که کابوس شگوری جهان رو می آید. ولی ما جهانی نمی بینیم بلکه وقتی دم از جهان میزنه میبینیم این یک خانهی با هفت منطقه یعنی هفت خانه در اون هم دیگه ساخته حالا ببین جهان رو چه چی میکنه جهان رو برابر با خانه میکنه این مفهوم خیلی مهمه این یعنی چی؟ یعنی جهان خانه انسانه و با خش ساختن انسان مدنیت رو می سازه. این مفهوم خشت خیلی اهمیت داره حالا اینه که خود کلمه خانه خود کلمه خانه این خه پیشوند خه یعنی سرچشمه آنه یانه یعنی جا خانه یعنی چی؟ یعنی سرچشمه آب هر این بود هر خانه ای را یه چا میکندم یا جایی بود که آب داشت اینی که خانه بدون آب نمیشد این بود که در پرهنگی ایران خانه یک ای مفهوم خیلی با اهمیتی بود چون که خانه برابر با سرچشمه آب آبم معنای خیلی وسیعی داشت چون که خدا این همانی با آب داده میشد اون وقتی این خانه اینه که ما در ایران به زن میگن خانه شاید این کلمه رو خیلی به توهین بگیرن ولی این توهین نیست این مقصود که این سرچشمه است نکتر و متوجه از اون طرف ببینیم که این همانی با چی جهان داده میشه یعنی جهان سرچشمه زندگیست آب سرچشمه زندگیست این یعنی گیتی درش ب... ا... یکی از مهمترین اصطلاحاتی که در همین شعر پردوسی در شاهنامه میاد اینه که میگه ج... ج... کسی چ... مثل جمشید چنون مثل او خواستار جهان نبود این کلمه جهان خواستداری خواستدار جهان بودن درست همون معنای سکوراریسم امروز رو میده درسته متوجه نکته بله بله. یعنی خواستار آخر شما میرید خواستگاری یه زن خواستار چیزی بودن یعنی دلبندی بی اک این درسته جهان خواستداری ما امروز دوست داریم همه با جهامونو قرض کنیم و این آره در خودمون داریم وقتی برکت هرین که نمیدونیم داریم شروع میکنیم قلب کردن واژه خلق میکنیم واژه خلق میکنیم وقتی تازه اوجی بر میشه گرفتار میشه این واژه تازه ترجمه یه واجی خارجی میشه و ما از فرهنگ خودمون دورتر میشیم بر جای اینی که نزدیکتر بشیم حالا نه کاملا درست میگی درسته متوجه این خانه ساختن اینی که میبینیم مثلا در گذیده های زادست حتی تاریخ رو برابر به خانه میکنه اولش بوم رو کسی مستطح میکنه و فران وقتی میگه جا... چیز تاریخ فرشگر در تاریخ یعنی نوسازی و زمان این همانی با خانه داره درسته اول بوم رو درست میکنن بعدش دیوار می درست میکنن اول بوم رو با کند فرام پایه گذاشت و اینها بعدش دیوار درست میکنن بعدش سقف. اون وقت سقف سازی از همه مشکل تر بود درسته برای این خاطر معمار رو راز میگفتن راز بوده اون وقت این قلب پرش کرد میشه سقف. این که اسم کرد اشکوب بود که ما اشکوبه میگیم یعنی طبقه گرفته یعنی ببین یعنی طبقه تازه روش ساخته میشه باز اثر طبقه تازه باز اثر روش ساخته میشه پس بنابراین فرش کرد این یه چیزیه که خ... طبقه رو طبقه ساخته میشه یعنی چی؟ یعنی نصرها روی همدیگر میسازن این پیوستگی تاریخی رو درک میکنه همه یک ملت در هزارها، ها یک با هم یک خانه می سازن درسته یعنی, پ... یعنی تاریخ خانه سازیه این نیست که من بیام اون چیزی رو که دیگران ساختم خراب کنم یه چیز دیگه بسازم آره بس... نه دلسته. این شما مسئولیت دارید که خانه بسازید که نسل بعد از من بتونه روش بسازه نه نمی که من کسافت کاری بکنم و نه تنها خراب بکنم بلکه تاری بکنم که اصلا دیگه نشه رو ساخت این ببین مفاهیم در این در این چیزها خیلی مفاهیم عمیقی هست که ما وجود ازش رد میشیم حالا داستانی که در اینجا میاد یک نکته هست که ما بهش نپرداختیم یعنی تا حالا صحبت از نکردیم چرا جمشید میگه دیوان و ناپاک رو امر کرد این کار رو بکنه آره، چرا به این صورته چرا, به... چرا واژه ناپاک خانه به این چیز مقدسی, مقدسی و به این بزرگی م... و با این رو چرا به دیوان میگه ساس؟ آفرین ساسه چرا آقای جمعه حالا. حالا این یک مسئله خیلی عمیقی رو طرح میکنه و اون اینی که انسان اولیه در فرهنگ ایران با انسان اولیه در تورات و انجیل و قرآن به کلی با هم فرق دارن درست. شاید ماها امروزه متوجه این نکات نیستیم و این درست تفاوت فرهنگ ایران از این عدیان ابراهیمیه و اون اینه که البته یه شناسی دانشناسی و خود زردشت جمشید رو از اولین انسان انداختن. برای خاطر که جمشید بون همه انسان ها بود بله مودل و یعنی ایدئال انسانیت بود و همه انسان ها ویژگی و گوهر جمشیدی داشتن ما مایه اولی بود آه. برای این خاطره که ما اجتماع رو فرهنگ رو مدنیت رو برپایه انسان جمشیدی می سازیم. یعنی نیاز به جمشید بودن انسان‌ها، انسانهای جمشیدی داریم ما نیاز نداریم که برای رنسانس ایران افکار اینا از خارج وارد کنیم یا حقوق و بشر رو جزو سادرات واردات به ایران وارد کنم خب اهدیاج داریم انسان جمشیدی از سر داشته باشیم با انسان جمشیدیه که ما میتونیم این مسائل حل کنیم جزوست. حالا این انسان جمشیدی در ها در وندیداد درست برقم اینی که دستکاری های کوچک شده این تصویر دقیق جمشید باقی مونده در اونجا که میبینیم چی میبینیم؟ در اونجا میبینیم که جمشید در همپرسیه با خدا اولین کاری که میکنه خشت میسازه با پاش گل رو میسپارد لقدمان میگد سپردن گل سپردن و با دستش خشت درست میکنه یعنی در واقع کاری که خود رو جمشید میکنه بعد این کار رو بعدها به،, به توی شاهنامه میاد دیوان ناپرین نه عرب به این زودی به اونجا ناییم این حرف درست وحث به اونجا برمیگرد ولی, ولی قصیه اینه که این که این کاری که خدا و انسان با همدیگه در هم پرسی آغاز میکنن چی هست با خشت, خشت بون مدنیت، بون خانه سازی، بون شهر سازی رو درست کنن اولین کار، نخستین کار انسان و خدا با هم چیه؟ شهر سازی مدنیت مدنیت، ساختن آبادی، آبادانی. آبادانی. آبادانی. کلمه آبادانی در پرهنگ ایران معنای مدنیت داره بعدش گفتن شهرگانی شهرگانی به جای واجه مدنیات که امروز کسی به کار نمیبره اما شهرگانی یعنی مدنیات. ولی مسئله اینه که این انسان اونجا در تورات و انجیل و قرآن برای این, بر این مفاهیم اتقا دارن که انسان خدا میگه که آقا از این درخت ها نخورید و آدم میخوره و اون وقت برای خاطر اینکه این کار خطا یا گناه ها کرده اخراج میشه از بهشت یعنی ببین این بهشت یعنی خونش خونش مال خودش نیست مستجره اجاره ایه اجاره ایه باید. و مالکش میگه آقا دک شو تو از به چه طبق فرمان من رفتار نکردی نه اینجا انسان خودش خانه خودشو در دنیا میسازه این خیلی فرق میکنه با هم. آ این با چه می سازه؟ با دست و پای خودش بدون کمک یعنی چی یعنی کار و بس... برای ساختن دنیا فوق العاده ارزش داره نخستین ارزش اینه که انسان با کارش دنیا را مدنیت رو بسازه اونجا ببینید اهمیت روی پایین قرار میداره که آقا تو اگر به امر و حکم خدا گوش ندی از بهش بیرون اندار فقط تو موقعی میتونی در بهش باشی که تحت فرمان باشی تحت با. اون این ایده چونو میشه که آقا تو خودت میتونی بهش رو بسازی با, پر... با دست خودت با کار خودت با کار خودت بدون اینکه نیازی به صاحبخانه داشته باشه حالا آره ببین این این یک این تمام فلسفه ای که ایران بر این صده ها دشوار بود و رو با شاهان و نالایق ناقابل یا فوران یا ایدئولوژی هایی که از و مذاهبی که با هم اختراف داشتن این فرهنگ در رگ و ریشه مردم بود که مردم جمشیدین مردم خودشون هستن که در دنیا چی کار میکنن آبادی میسازن آبادی میسازن جهان رو بهشت میکنن بدون این این به ای ببین این ایده این خواستار جهان بودن که امروز ما با این واژه سکولاریست که اغلب اینا که به کار میبرن نمیفهمنن این معناش چیه و سر این جنگ و دواس که میگه لایسیتی؟ که میگه آقا چه و و اینها همیشه متوجثر به لغات خارجی میشن و اصلا نمیدونن که این واقعیت این سکولاریسم کواررس این است، چنین انسانی است که با دست و کار خودش میخواد در دنیا بهشت خودش بسازه. بهشت خودشو بسازه یعنی که گرانیگاه اینجا تغییر میکنه ها. گرانیگاه مفهوم انسان، بنا این تعریف جمشید فرق میکنه با با آدم با آدم اسلام یا تورات بله آره. اینه که ببین که خیلی ها اینا رو که میخونن در اثر اینی که دقیق نیستن از این مفاهیم و از این فلسفه عبور میکنن و اینا رو ناچیز میگیرن در صورتی که اینا پایه‌ست یا <تصفح> ببین که هیچ کس بحث از این نمیکنه در بحث همین سکولار هیچ کس بحثو جمشید رو نمیکنه چرا فکر میکنن انقدر پیش با افتاده است آره میگن یاخو این چیه خب دیو, دیو دیوارو ساختو فلان و فلان حالا حالا ما که اینجا تا اینجا رسیدیم که این در جمشید با همپرسی خدا ولی خودش با پاش گل میماله میزنه و با دستش خش درست میکنه این داستانیه که تو وندیداد از جمشید باقی مونده و, و این فراموش که این بخش وندیداد رو متخصصین زمان که روی زبانهای عوستایی کار رو کنند خیلی بعضی هاشون این رو متونی میدانند که پیش از گاتا نوشته شده یعنی کوهندتر از گاتاست گواتا بله خب دقت کردی بله بله. آه. این اهمیت این اینه که این این یعنی این داستان این تصویر انسان یک تصویر بسیار کوانت در فرهنگ ایران درست هلا حالا. حالا ما با این ببین با اینجا ترکیب هم پرسی خدا و کار انسان هم پرسی یعنی با هم اندیشیدن با هم جستجو کردن در اینجا این مدنیت ساخته میشه و در کجا؟ در جهان بهش در جهان ساخته میشه حالا یک جفه در شاهنامه بینیم که به فرمود دیوان ناپاک رو حالا دیو ناپاک هم شد حالا این دیو ناپاک درست خانه میسده درست مدنیت رو میسده البته این اونجا اینجا متوجه نیست که این مفهومی رو که از خانه و اونم گرمابه و, و کاخ و اینها که فراموش نکن پناه از گزند بله. درسته؟ یعنی جاییست که محفوظه کسی به انسان گزند وارد نمیاره نکته باریکتر اینجا میگه بفرمود که آب رو با خاک آمیختن این آب رو با خاک آمیختن این باز همون ماپوی می رو داره این دو که وقتی با هم ترکیب شد آمی با هم آمیخت این اصل ستا یک رو درست می‌کنه اون چیزی که اینها رو به هم می در خشت اساساً در برهان خاطی خشت میگه چیرا است که در جاهایی که سوراخ موراق دیاد می ریزن که این نرا چورا خورو همه رو میگیره و سفت کنه یعنی یه چیزیه معناش یعنی یه چیزیه که همه چیزها رو با هم میپیونده حالا یعنی مفهوم درست مفهوم آمیختن در این باجه باقی مونده و اساساً خاک در فرهنگ ایران همون خاکینه نمیگی بله خاکینه چی تخم تخم مرغ تخم مرغ و غیر از اینی که تو و مرغه چگار میکنید؟ و هم میزنید؟ هم میزنید آره خیلی خوب، همین به هم زدن؟ خودش آمیختنه آمیختن، بلی غیر از این، اینه که فرهنگ ایران خاک را برعکس اسلام و اینا چیز مرده نمیدونست خاک، همون خاک آگ بود، آگ یعنی خوکه گندم آقا هم از همین میاد آقا هم از همین واجه میاد اینا حالای دنبال کدبان رو اینا میگردن خیال میکنن آقا رو ترکا آوردن آقا ترکا هم همین حرفو داشتن فرهنگ. یعنی همین فرهنگ در اونجا تاثیر کرده آق معنای چی داشت؟ معنای تخت داشت تخت داشت تخت تخ یعنی منشه و مبدع آقا کتیه مستقله منشه و مبدعه این بحثه به ترک و مرگ نداره کردن حالا خوشمزه است که همین هاگ در عربی شده حق درسته همین واجه در عربی شده حق تخف حقه چون که درونش اون زرد است درونش این میدونه این اساس زندگیه برای این خاطر حق چیه حق در فرهنگ ایران حقیقت همیشه درون چیز هاست که میروه که آفریننده حقیقت یه چیزی نیست که حقیقت اون مغز چیزهاست که آفریننده هست حقیقت نیست که شما یه جایی بره بیاد بگیری و تو جیبت بگذاری یا بهش ایمان بری نه حقیقت اون که شما رو شما رو زنده بکنه در دلتون من زنده بکنه این حقیقت حقیقتی که من آدم کش بشم و اینا این خب با تخم و با آفرینندگی کار نداره این آدم کشیه. حالا این مسئله ما پس بنابراین این آب و خاک و پیوند این آخر آب, آب و تخ در فرهنگ ایران درون اینها آتش, آتش بود آتش ناسوز. ایرانی میگفت آتش ناسوز. این رو ما امروزه نمیدونیم آتش در درون چیزها گرما هست این می گفتن آتش ناسوز این گرمو حکم مایه داره مثلا ارد و, آب و اگه بدون مایم چیز کنی با هم ترکیب کنی گرم نگه داری خمیر میشه ترش میشه طر... مثلا مثلا سرطوری میگن ترش آبستان به مایع یه چیزیه که آبستان میکنه متوجه اینه که آب و خاک خواستم میدونیم مفهوم خشت رو در باز در تص... تصویر ایرانیش رو آب و خاک مفهوم یه یعنی خشت شدن یعنی به هم پیوند شدن حالا این یعنی چی؟ یعنی مدنیت هنر و ویزیکی به هم پیوند داده شدنه رو به هم پیوند میده انسانها ج... ج... قبیله, ها،, قبیله قوم ها قوم ها گروه ها اینا را باید به هم پیوند بده تا چی مدنیت ایجاد بشه اگر شروع کنن آدم کشی بکنن این همون چیزیه که امروز ما حالا به غلط و درست بربریت و توخش و اینا میگیم این پس بنابراین این چرا یه دفعه این درست این این فرهنگ دیبی هست حالا این دیو اومده در با زردوشت چی شده؟ زشت شده شده یعنی از خدا افتاده و حالا نه تنها از خدای افتاده بلکه نفرین شده و زشت شده حالا چرا جمشید این کاری رو که خودش میکرد یه دفعه به دیوان میده که بکنن فرمان میده دیو بکنه برای خاطر اینی که در ما مفهوم کار در اجتماع تأخیر شد ارزش کار چی شده از بین رفته از بین رفته کار به خصوص مدن ساختن مدنیات کار ساختن مدنیات شده چی اهریمنی شده دیوی یعنی در واقع به... به عبارت دیگه اون کاری که بهش رو می سازه اون کار زشت ساخته شد یعنی بهش نسازید آفرین درست همینجا اونا شاید دلشون میخواد بگه طبقه کارگر حقیرتره ولی یاد ما طبقه آخوند و اینا بالا هستیم طبقه پهروان بالاست. طبقه اینایی که کار میکنن، کارهای عملی میکنن، اینو طبقه پایینان این مثل دیوا، میدونی تنها در اینجا، در جاهای دیگر هم شاهنامه میبینیم که کار کار کارمال دیواست، با عهده دیوا ها این به کلی بر ضد فرهنگ ایران، اینه واژگون سازی شده. ها حالا این چی شده؟ این بدون اینکه اونها متوجه باشن وقتی که کار اهریمنی میشه با اهریمانی شدن کار با دیوی شدن کار که دیوی دیگه اون مفهوم خدایی رو نداره بلکه چی داره؟ مفهوم زردوشتی گرفته یعنی زد خدایی نفاق شده خب برای این مدنیت سازی از طرف انسان چی میشه؟ مدنیت سازی میشه کار دیف. انسان نبایستی دنیا رو آباد کنه نباید بهش بسازه نباید مدنیت بسازه نباشید. حالا ببین در اینجا درست ما داستان ایرج رو میفهمیم داستان جمشیدی میفهمیم چرا جمشید تمام این کارا رو که میکنه همه برای آبادی و مدنیت در دنیا آخرش با چی میشه با دیو هم کار میشه خردش با دیو میره آسمون با کار زده, زده خدایی میکنه پس بنابراین ببین آباد ساز مدنیت سازی از انسان تحریم میشه انسان حق نداره مدنیت بسید دستش بسته میشه کار مدنیت سازی کار انسان نیست این کار ماله کیه؟ مال اهورام ازداز که اومده یعنی این خدایان اینا باید دستور بدن که تو بسازی این عملا همون داستان یهو و الله و اینهاست که تو در دنیا حق ساختن مدنیت نداری مدنیت کار دیویه کار زشته اصلا بعد در فکر دنیا نباش کارهای دنیا همش دیویه چی آباد بکنی ببینیم ترین خطرها و فاجعه ها از همین به وجود اومدش از همین به وجود میاد ما شاید اینا رو کم ارزش بگیریم دود رد بشیم حالا. من اینجا امروز بحث به حسب تصادف این مصیبتنامه را فاز کردم مره اتار آره ب... ب... ب... بحث به حسب تصادف یه دفعه داستانی خوندم که گفتنش برای خطام این گفتگو من بعد گفته میشه و این مسئله رو توضیح میده که این تغییر مفاهیم چه فاجعه ها و چه دردسرهایی داره بله وقتی که این مفهوم کار و دیو رو به هم پیوند دادن به کلی اون فرهنگ مدنیت سازی در دنیا با خرد و با خرد جمشیدی با خاست جمشیدی با جهان خاست داریش به کلی عوض شد درسته؟ در همین دیوان ناپاک یه دفعه با کار با یه چیزی اعتراف داده شد که این مفهوم خب در اجتماع گرفت ها تمام مفهوم کار با دیو همراه شد معناش عوض شد با این معارض شدن معنا با کلی روحیه و منش اجتماع تغییر کرد و این بزرگترین فاجعه را در جامعه درست حالا این داستانی رو که عطار میگه خوشمزه است در مصیبت نامه در مصیبت نامه میگه که یه دوزی رو گرفتن و بردن وسط شهر رو در اونجا جلو همه مردم برای ننگین ساختنش رو برای اینا دستشو بریدن و این دوست هیچ نه خروشی کرد نه آهی کرد نه نالهی کرد هیچی نه. بعد از اینکه که این دستشو بریدن از اونجا که آمد هیچ نگفت تا اینکه که رسید به یک به خراواتی میکدهی رفت در اونجا شروع کرد به فریاد کردن از درد نالیدن یه کسی که این رو دیده بود گفت که آقا تو چرا اون موقعی که دستت رو بریدن با اون ساتور زدن رو دست این درد نا نا نا نا درد ناکام رو به تو وارد کردن چرا اونجا خروش نکردی چرا اونجا ناله نکردی اونجا همدمی نبود همدردی نبود کسی همدردی نداشت اینجا همدرد هست من اینجا دردم رو فریاد میکنم چون که همین که اینجا هستن درد من رو همدردی همدرد من رو احساس میکن ببین این درست همین واقعیه تغییر معنای دست بریدن این عذاب دادن این برای خطا دست انسان رو بریدن برای این ملت که اونجا جمعه اوینا اومدن چی ببینن اینا از این درد رو نمی بینن اینا اومدن لذت از شادی ببرن اینا میخوان اومدن تماشا بکنن که این یارو رو که دستش میورن این دارن قربانی برای الله میکنن و قربانی برای الله خوبه باید شاد شد این تنهای قضیه نیست که عبرت بگیرن مردم مردم شادی میکنن که این, ما این هر این کسی که در مقابل الله خطا کرده دستشو می برن. رو این هم هست که اینا برای همدردی دردی برن اینا برای اومدن که از بردن درد یکی چی شادی ببرن ببین معنای درد عوض شده معنای قربانی معنای این دسته کسی رو میبرن ایجاد همدردی نمی کنه ایجاد چی میکنه شادی میکنه, شادی میکنه. اینه که ما هی لقب و حکم اعدام بکنیم تا ملت این فلسفه شوارونه نشه اعدام برای اونها یک اعدام در برای الله برای, برای اجرای حکم الله هست بنابراین شادی آوره. هست این کار کرد مثل ت... عید قربانشان عید قربانشان هم همینه دیگه حالا, حالا, دو... یه دا... حالا که بحث اینجا شد من یه دفعه یاد, یاد یک داستان دیگری از عطار افتادم در اساس اسرار نامه چیز خیلی خوشمزه است درست همین ایده درست همین تغییر معنای این عذاب دادن رو میده. میدونی از آذار جان ایجاد همدردی نمی کنه درست ایجاد شادی میکنه. ببینید فلسفه ایرانی عوض میشه. شه و کلی اونی که مفوچه را این آذار جان وقتی که ببینید شما تمام دنیا به فریاد این می‌بینی داستان سیامک رو نگفتیم در داستان سیامک کمی طبیعت جمع میشه که بر ضد اون اهریمن سپر که, که کشته همه طبیعت بلند میشه یعنی چی؟ یعنی تمام این درد رو احساس میکنن آفتاری. آفتاری. حالا حالا اینجا ببین قضیه داستانی میاره خیلی این داستان ها مهمه در این داستان میاد میگه شاهی وارد یکی از شهرهای ایران شد برای آزین بسته بودن شهر رو تا, تا... آره... تا... فلان و فلان شاه که باردی گفت من اینا رو نمیخوام ببینم اینا به درد من نمیخوره گفتن پس کجا رو میخوایی ببینی گفت من رو ببرید زندان من میخوام زندانی ها رو ببینم گفتن چرا؟ گفت در زندان هست که امر من اجرا میشه وقتی که اینها کتک میخورن می بینن اونجاست که امر من اجرا میشه اونجاست که من خوشحال میشه نه اینها ببین این انتقاد اینها میگن انتقاد از اسلام چیزیه که حالا شروع کردن اینه اون موقع عطار به همین بیان از ست تا فوشت بدتر به اسلام انتقاد کرده یعنی چی؟ یعنی خدا دوزخ و دوست داره دوزخ شکنجه های این چیزها رو بره. در همین دنیا, در, در, همین دنیا در, در همین دنیا اینا ببین در اجتماع لذت میبرن تمام اجتماع تبدیل به زندان بشید هر کشته بشه اعدام بشه کتک بزنن حکم ارتداد صادر کنن عذاب بدن اینا ببین این برای اینها درست, درست چیه؟ شادی شده با اینا بزرگترین شادی ایناهای میگن لقب و حکم اعدام بقوق بشر مسئله روان رواندادانه تغییر معنای درده تغییر معنای این مردم دیگه از مردم سمپاتی دارن برای چی؟ برای اسلام عذاب دادن قربانی کردن در راه الله شادی داره خیلی هم آقای جمالی جدیدن تو ایران باب شده طرف میارن تو مرکز شهر اعدام میکنن بعد تماشاگران میشینن اونجا دست میزنن تخبه میشکنن لذت میبرن خب همین تغییر معنا یعنی یه نفر نیست اونجا بیاد بگه آقا این داره میمیره گناه داره آه. ببین این تا تا چیز تا این روان مردم تغییر نکنه تغییر شما نه حقوق و بشر دارید نه رقب حکم ادام دارید نه این چیز برای ایجاد کوراریس میتونید گامی بردارید نه جامعه مدنی میتونید بسازید میدونید روان ها بایستی این معانیشون این پیوند این معانیشون عوض میشه درسته. خب جناب جمالی بسیار سپاسگزارم که بخش دوم این سخنرانی رو درباره معنی دیو در زندگی جمشید در اسطوره جمشید شکافتید و به ما توضیح دادید امیدوارم که در بخش بعدی معنای دیگری از دیو رو بشکافید برای شنوندگان همین کار رو خواهیم کرد خیلی مشکرم سپاسگذارم از شما